سه حضرت علی علیه السلام ربایی مناجاتی حضرت علی علیه السلام ای خانه خدا یا حیدر ذکرت به دلم دهت صفا یا حیدر عالم همه محتاج تو انداق ای نام شما گره گشا یا هیدر ربایی متحی هماسی امیر مؤمنین علیه السلام تا تیغ به دست هیدر کرار است افتاده به هر طرف عدو بسیاره بر روی لبم مده علی باد ولی مدهش به یقین فراتر از گفتار است دو بیتی ازدواج حضرت علی علیه السلام با حضرت زهرا سلام الله شب پیوند زهرا و علی شد همه عالم پر از قال و بلی شد انیس مرتضا گردید زهرا از این وسلت دل ما منجلی شد ربایی حضرت علی علیه السلام آلیست گداگ پشت این در بودن یک عمر اگر قلام قنبر بودن بر من بدهند اگر همین هم خوب است خاک کف پای اسب در بودن ربایی اید قدیر یک موسم دلپذیر هم در راه است یک شادی نظیر هم در راه هست. تا آمدنش لحظه شماری باید ای هیدریان، دریان غدیر هم در راه هست. در مده حضرت علی علیه السلام حل شود صد مشکلم با گفتن یک یا علی قلب من خورده گره از روز اول با علی ای که نامت مرتزا بر درد بی درمان میکند می کند دردم دوه نام شما مولا علی. حضرت علی علیه السلام مده عید قدیر. بعد از نبی وسیع همه خلق مرتزا. بعد از نبی علیست که برشیع مقتداز اید غدیر افضل اعیاد امت و هیدر خلیف نه به خدا رهنمای ماست چون دومی زیاد شود یافت در جهان بله فقط علیست چهارون به مصطفیه یا دین و حبل متین میر مؤمنین او آدیات واقع یاسین و حلعتاست تنها چننده در خیبر علی بود تنها علی بود که فقط شاهلا است با ذکر یا علی دل جان تازه می شود نام علی برای همه دردها دواست کل جهان به یک طرف و یک طرف نجف راهی آن مکان شده هر دل که مبتلاست صحن و سرای حیدر کرار است ایوان طلای شاه نجف به با چه باسفه است مده حضرت علی علیه السلام ای پای تا سرت همه مصطفی علی برکل خلق رهبری و مقتدا علی هر ناتوان به نام تو برخیزد از زمین نام تو زینت همه عرض و سما علی باب حسین حسن همه جان فاطمه ای باب زینبین و شه لا فتا علی وقتی که تیغ می در میان رزم آیت صدای لا سعی از کبریا علی سردار جنگ بدر و هنینی و خندقی یعصوب دین و حیدر و یا مرتزا علی وقتی رسید حضرت احمد به سوی ارش آنجا شنید صوت تو را از خدا علی در آسمان بدید نبی یک فرشته را تمثال کرده حقز جمال شما علی ای بهترین خلق و فراتر ز وسم ما گویم چگونمت حسنای تو را علی گویم که جو نیست کسی مملو از خدا هستی پس از رسول تو مولای ما علی دارد جواد امید که اندر حریمتان باشد مدام روی لبش ذکر یا علی